بسم الله الرحمن الرحیم بنامی خلابنده بخندهی مهربان و الزاریات دغوه سبگان به بادهایی که عبرها را به حرکت در می آفرند فالحاملات وقوا بست پست سبگان به عبرهایی که بار سنگیلی با خود حمل می کنند فالجاریات یسره بست پست به کشیهایی که به آسانی به حرکت در فلو پس ایما بی که کارها را تقسیم می کنند ما توعدون لطاده که آنچه به شما بعد داده شده است قطعا راست و و بدون شک جزای اعمال باقی شدنی و و قسم با آسمان و مسیرهای هم آهنگ و مناسمان اینکم لسی شما در گفتار مختلف و استید که از ایمان به آن منهرت می شوند که قبول حق ترباق می سنند کشت شبن دروگویان الذين يوم يوم هم في غمرة سحور، هم أن هؤلاء الجهد غفلت روده الدين، روز الجدار شموع فيه؟ يومهما لن يوفدون، أرهما منذي تأنهرا براء تشميسه ثامن. ذوقوا هذا الذي كنتم کنتم به ایت سعجیون بچشید عذاب خود را این همان چیزی که در باره این اجانه داشته این المتقین بی جنتی و کاران در باغ های بهشت و در میان چشمها قرار دارم آقبین ما آجاهم ربهم ان ان كانوا قبل ذلك محسنين بامكي فر به آنها مرحمت کرده دریافت یأس ني دارم زیرا آنها پیش از آن از کاران بودند كانوا قليلا من الليل ما يهجعون انها كم يا و غير اسعارهم يستوقون و سهرگاهان استغفار میکردند وَتَنِي أَمْوَالٌ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ بَتَر أَمْوَالُ أَنَّهَا حَقٌّ بَرَايَ السَّائِلِ بِمَحْرُومُ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ بَتَتَنِين أَوْجَاهٌ بَرَايَ السَّائِلِ بَخِينَةٌ أَمْ فُتِحَتْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ و در وجود خود شما نی آیا آیا نمی بینید و بسماء رزقكم و ما روزی شما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده می شود و رب السماء و لحق مثل ما تنطقون تو کان به پرکار ارواح زمین که مطلب حقه همان گونه که شما سخن میگیم. آیات آیا خبر مهمن های بزرگار ابراهیم بطور اتدا؟ اذ دخروا لي فقالوا سلاما قالت لهم قوم كون دران زمان که بر شدن با او بارد شدند و گفتند سلام بر با تو او گفت سلام بر شما که جمعیت ناشنافت این و به دنبار آن سنهانی به سوی خانواده خود رفت و به ساله فرزه آبر فقربمو قال الا تأخلو و آن را نزدیک که آنها گذرد گفت آیا شما غذا نمیخورید؟ خورید فاؤذ ذنهم خیفه لا تخف و احساس وحشت کرد گفتند نتر و او را شارت با تولد پسر دانا و هوشیار دادند فأقبلت امرأة في قوة فصفكت وجهها وقالت عجوز عظيم بل ان هنغام هم سر الجلاب آمد بل هذي كانت خسالي وسع جفريات ميكشي ببطورة خدر بقوه في الزن نعضا حبتان قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكوم العليم حضرت قارونین گفته است و او بیگمان گمان و دانا قال لما خاطبكم اي واله مرسلون يا براهم تصمعوا بگویتی شما چی اي پرست سادهگان خدا قال اننا ارسلنا الى قوم مجرمين دسان ما با توی قوم مجرمی فرستاده شده این لنبتل عليهم حجاره من قیم تا برانی از سنگ گل برانها بفرسته این مسوومتا عند ربک للمسرقین سنگ که از ناسته فرورتار از برای اصلافتارن نشان شدند، فا احرینا من کانتی آمین المؤمنين ما تمام مؤمنانی را که در آن چند هالت دگی می خارج کردیم. و ما وجود نداشتیم چه خانواده با ایمان تمامی در تمام آنها نیستیم. و و در آن نشانه ی راکشن برای کسانی که از عذاب در, در, در نقلی استند. و بی موسی از ارسلناه الى فرعون بسلطان مبین در زندگی موسی نید نشانه و درد عبرتی بود انگامی که اورا بسوی فرعون با دلیل آج خاص رساتی فتوالله و وقال ساحر او مجنون اما او با تمام وجودش از بیرون بر با تا گفت این مرد یا ساهره یا سیبانه و و ما او بلشتریانش را گرفتیم و در دریا پرتاب کردیم در حالی که در فره فرزنش بود و ارسلنا همچنان در چون در سر سرگذشت آدمی در آن انجام کتان باد بیباران بر آنها فرستادی ما تدعو من شیء اتس آن الا جعلته کرمیم چادر چی میگوزش ها نمی کرد پوسیده کند وفي ثمود إن سيل لهم تمثت عوحة تاحون بني زفر قدشت قوم الثمود ابراكي دران هنجام كبانها قد تشد مدة كوتا متمثئ باشي ساعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصارقة وهم آنها از فرمان پر وردارشان سرباست بدن بسایقه آنها را فرو گرد در حال که خیر خیره نگاه میکردند آنها چنان در زمین افتادند که قدرت به قیام نداشتند و نسالفتن از کسی یاری ترابند نهمچنین قوم نوه را قبل از آن ها هلاک کردیم چراک قوم فاسقی بودند ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و همباره آن را وسعت می بخشید وَالْأَرْضَ تَوَشْنَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ با سرینزا دفتر دین با شکوند دفتران دین وَمِنْ كُلِّ شَيْخَ لَقُنَا دَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ با ترچیز دوزاوش آسرین دین شاو متذکر شدین پس سوی خدا بشادی که من از سوی او برای شما دین دهنده دی آشکاری هستم و لا مع معروعی ایلی آن آخر اینی لکن من و با خدا معبود دیگری قرار ندهید که گمان من برای شما از سوی دی او دین دهنده آشکاری هستم کَذَلِكَ مَا أَتَلَّذَىٰ مِنْ قَلْبِهِمْ مِنْ وَصُولٍ إِلَّا قَالُوا أَوْ قبل از اینها بسیار قومی فرستاده نشد، مگر اینکه غصان و صهیرا جذیبان. أَتَوَاصُبْ بَلْ نَسْقَوْنَ فَهُوَ اولیا دیگر را به آن سفارش می‌کردند نه بلکه آنها قوم صخریانند و دعوا که چنین است از آنها روی بکسانند و تو هرگز در قره بلا و بود و ذکر به ان زیرا صداقان برای مؤمنان سود منده. و ما خلق الجن والانس الا ليعبدون. من جن با انسان نیافریدم چون برای اینکه ابادت میکنند. ما اريد منهم من و ما اريد آن يقيمون. هر نمیخوام. کہ من روزی دهند و نمیخواهم مرا اتهام کنند ان الله هو الرزاق ذو القوت روزی دهنده صاحب قوت و قدرت است و ان الذين ولمذنبوا مثل ذنب فَلَا فلا برای کسانی که ستم کردند سهم بزرگی از عذاب اما از سهم یارانشان به راه عجله نکنند وایل پس وای بر آنها که کافر شدند از روزی که به آنها وعده داده شود.